سوره یاسین <تكيل> إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم بنعم الله که بخشاگنده با رحمت است یا <صفيق> سی قسم به قرآن حکیم که تو از بران هستی و بر راهی راست و الهی قرار گرفتی این قرآن نازل شده از سویان قدرتمند بارحمت است تا مردمی را نسبت به دستاوردشان هشدار دهی که پدرانشان هشدار داده نشدند و از حقایق قافلند. فرمان الهی درباره اکثرشان تحقق یافته است و همین دلیل ایمان نمی آورند. ما در گردنهای آنها غلهای انداختیم که تا چامه ادامه دارد آنچنان که نمی به تسلیم سرفرود آورند. هم در جلو آنها دیواری کشیده ایم و هم در پشت سرشان و بر روی چشمهایشان نیز پردهی ای انداخته ایم تا هیچ حقیقتی را نبینند بنابراین ها را از آقبت کارشان بترسانی یا نترسانی هر دو یکسان است و به حقایب ایمان نمی‌آورند. تو فقط می توانی کسانی را که از قرآن تبعیت می کنند و همواره در نهان از خدای رحمان میترسند ترسند حشدارده پس به چنین کسانی مغفرت الهی و پاداش با ارزشی را بشارده اینا نحن نحیل الموت و نکتب ما قدم و آفارمون و کل شیع به راستی ما مردگان را زنده می کنیم و تمامی عمل کردها و دستاوردشان را می نمیسیم. بدانید هر چیزی را در امام مبین محاسبه کرده ایم. برای آنها اصحاب قریه را مثال بزن که پیامبران به سراغشان آمدند آن هنگام که دوتن از پیامبران را بر آنها فرستادیم آنها هر دو را تکسیب کردند پس به واسطه پیامبر سوم، آن دو را تقویت کردیم و گفتند همه ما به سوی شما فرستاده شده ایم. گفتند شما جز بشری مسلمانی نیستید و خدای رحمان هیچ چیز نفرستاده و شما فقط دروغ میگویید گفتند پروردگار من آگاه است که ما به سوی شما فرستاده شده و ما وزیفهی جز ابلاغ روشن حقاقیق نداریم و ما إلا آنها گفتند ما شما را بدیمن و بدشگون میپنداریم اگر از سخنانتان دست بر ندارید همه شما را سنگسار میکنیم و از ما به شما عذاب سختی خواهد رسید پیام بران گفتند شومی شما از خود شماست اگر خوب بیندیشید نه شما هدردهندگان نعمتهای الهی هستید مردی از نقطه دور دست شهر شتابان آمد و گفت ای قوم من پیامبران را تبعیت کنید از کسانی تبعیت کنید که از شما هیچ مزدی نمیخواهند و هدایت یافتند آخر چرا خدایی که مرا آفریده و سرانجام نیز همه به سوی او بازون گردید نپرستم چرا به جای او خدایان دیگر اختیار کنند حالان که اگر خدای رحمان بخواهد آسیبی به من برساد شفاعت هیچ کدام از آنها سودی به حال من نخواهد داشت و آنان باعث نجات من نخواهند شد <تصفيق> و اگر چنین کنن بیشک در گمراهی واقعی خواهم بود اما من به پروردگارتان ایمان آوردم پس حرف مرا گوش دهید به او گفته شد وارد بهشت شو. مرد گفت کاش قوم من حقایق را درک میکردند اینکه خداوند مرا آمرزید و در زمره انسانهای گرامی و با ارزش قرار داده است و ما بعد از او هیچ لشکری را از آسمان بر سر قومش نفرستادیم حقیقتا نفرستادیم آنها ارزش عذاب شدن توسط لشکریان و آسمانی را نداشتند فقط سیهی مرگبار بود و ناگاه همشان خشک و خاموش شدند. تریغ از این بندگان هر پیامبری که به سوگشان آمد فقط او را به تمسخور گرفتند آیا ندیدند چه بسیار مردمانی را قبل از آنها هلاک کردیم و دیگر به سوگشان باز نمیگردند؟ همه جمع خواهم شد و نزد ما حاضر می گردند. زمین مرده برای آنها نشانه است ما را زنده می کنیم و دانه‌های از آن میرویانیم تا از آن بخورند و در زمین باغهای نخل و انگور پدید آوردیم و چشم سارها در آن جاری نمودیم تا از میوه آن بخورند حالان که دست آنان هیچ دخالتی در ساختن آن نداشته است با این همه چرا شوق گذاری منذه است آنکه همه همه زوجها را آفرید چه از آن که زمین می روی آمد و چه از جنس خودشان و چه از چیزهایی که آنها توانایی درکش را ندارند شب نیز برای مردم نشانه است آن هنگام که نور روز را از آن بر و همه در تاریکی فرو می آفتاب به سوگ جایگاه خیش روان است و این تقدیر خدای قدرتمند و آگاه هست برای ماه نیز هلالهایی را مقدر کردیم که چون شاقه زرد و کشگیده و منهنی شکل خرما شد لشم سویم بغیده ها دودرگل قدر و ولا سابق و فی همه چنان منظم شدهاند که نه خورشید باید به ماه برسد و نه شب بر روز پیشی گیرد. همه در مدارهای از پیش تعین شده خود شناورند نشانه دیگری که برای مردم وجود دارد این است که ما نیاکانشان را در کشتی مملو از موجودات مختلف سوار کردیم و برایشان چیزهایی آن آفریدیم که بر آن سوار شوند. اگر می‌خواستیم همشان را غرق می‌کردیم و هیچ فریادرسی نداشتند و تحت هیچ عنوان راه نجات پیدا نمی‌کردند مگر آنکه رحمت ما بیاریشان بیاگد و دوباره یک فرصتی دیگر و هنگامی که به مردم گفته شود از آن چه در پیش روی شماست حسابرسی دقیق و عادلانه الهی و آنچه چه پشت سر گذاشته اید عمل کرده بدتان بترسید شاید مشمول رحمت الهی شوید توجهی نمی کند هیچ آیه ای از آیات پروردگارشان به سراغشان نیامد مگر آنکه از آن روی برگرداندند و اذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا انقيم من له يشاء و هنگامی که به آنها گفته شود، از آن خداوند روزی شما کرده دیگران را نیز بهرهمند کنید اهل کفر به اهل ایمان گویند چرا باید کسانی را اطعام کنیم در حالی که اگر خدا میخواست میتوانست می توانست را اطعام کند بدانید، شما جز در گمراهی واقعی نیستید. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. همچنین میگویند، اگر راست میگویید، این وعده قیامت کی میرسد؟ آنها فقط در انتظار یک سیحه مرگبار آسمانی هند. درگیری های روز مرشان به ناگاه آنها را فرا گیرد. به طوری که نمی توانند وسیعتی کنند و نه به خانواده خیش بازگردند به انگامی که در سور دمیده شود ناگاه از قبرها برمیخیزند و به سوی پروردگارشان ره سپار می شوند. گویند ای وای برما چه کسی ما را از خوابگاه من برانگیخت. این همان وعده خداوند رحمان است و پیامبران راست گفتند جز یک سیهی چیزی نبود در نتیجه همشان جمع شدند و نزد ما حاضر گردیدند امروز بر هیچ کس هیچ ظلمی نمی رود فقط مطابق دستاوردتان مجازات می شبید. امروز اهل بهشت به بهره از نعمت‌های بهشتی مشغولند آنها و همسرانشان در سایه‌های بر تخت‌های راحت تکیه زدند هر نمیمی به هرچه اراده کنند برایشان مهیا سلام قوله بر رب الرحیم این سلام و امنیت بعدی از جانب پروردگار با رحمت است شما ای کاران و مجرمان امروز کنار ردیل الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لكم عدوم ای آدمیان آیا با شما پیمان نبستم که شیطان را عبادت نکنید زیرا او دشمن واقعی شماست و اینکه فقط مرا عبادت کنید این راه راست و درست و نجات بخش است شیطان ادعای زیادی از شما را از راه امن الهی گمراه کرد آیا در آن موقع عقلتان را به کار نمی گرفتید؟ این همان است که بدان وعده داده شده اید. امروز به خاطر دستاورد کفرارودتان در آن داخل شوید و به آتش آن بسوزید. امروز زبانهایشان را می بندیم تا دستهایشان با ما سخن بگویند و پاهایشان شهادت دهند که دستاورد آنها چه بوده است اگر بخواهیم میتوانیم نور چشمان آنها را بگیریم پس چگونه خواهند توانست با شتاب به پیش روند وقتی که جایی را نمیبینند اگر بخواهیم آنها را در سر جایشان مسخ می چون مجسمی خشک و منجمد میسازیم تا نه توانند قدمی جلو بروند و نه قدمی به عقب گذارند بدانید هر که را عمر دراز دهیم دوباره به ناتوانی اولیه‌اش باز می‌گردانیم مثل دوران کودکی که به تنهایی کاری از پیش نمی برد چرا در این موارد اندیشه نمی‌کنند و ما این آیات شعر نیستند و ما به پیامبر شعر آموزش ندادیم اصلا شعر سزاوار کسی چون او نیست این کتاب فقط یادآوری حقایق و قرآنی روشنگر است تا به واسطه آن هر زنده دارای فهمی را هشدار دهد و حق بر منکران آن ثابت کرده آیا نمی بینند که ما با دستان خریش چهار پایانی برای آنها خلق کردیم و آنها مالکشان شدند و آنها را رامشان کردیم برخی از آنها را سوار می شوند و از برخی دیگر می‌خورند و در همه آنها برایشان منافعی چون آشامیدنی هاست چرا شکرگزار نعمتهای الهی نمی با این همه به جای خدا خدایان دیگری اختیار می کنند تا شاید در مشکلات یاریشان کنند حالان که توانایی یاریشان را ندارند و این آنها هستند که همواره چون سپاهی در خدمتشان قرار گرفتند سخنان و ادعاهایشان تو را غمگین نسازد ما آنچه را نهان میکنند و آشکارا انجام میدهند همه را به خوبی میدانیم اولم یرا الانسان انا خلقناه من نطفت آیا انسان نمی بیند که ما او را از نطفه خلق کردیم و اکنون او تبدیل به یک دشمن آشکار شده است این انسان نادان در حالی که آفرینه چه خود را فراموش کرده برای ما مثل می زند و می گوگد این های پوسیده را چه کسی زنده می کند بگو آن را زنده می کند همان کسی که اول بار خلقشان کرده و او بر هر خلقتی آگاه است همان کسی که از درخت سبز آتشی برای شما قرار داده و شما به وسیله آن آتش می افروزید. آیا کسی که آسمانها و زمین را خلق کرده توانایی آن را ندارد؟ مثل چیزهایی را که آفریده دوباره خلق کند آری قطعاً می تواند. زیرا او آفرینندهی داناست بدانید که وقتی ارادش بر چیزی واقع شود با آن میگوید موجود چوب، بیدرنگ موجود می شبد. پس منذه است خدایی که حکومت و فرمانروایی مطلق هر چیز به دست توانای اوست و بیشک. همه تان به سوی او باز خواهید گشت. سبحان الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شيء وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ صدق الله العلي العظیم راست <متصفح> گرد خداوند بلند مرتبه بود از مؤسسه پیامبر محر و رحمت صلی الله علیه و علیه و سلیم.